Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil Aliyyil Azim. Hasbuna Allahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man naseer. Thumma salatu was-salamu ala sayyidina Muhammad wa alihi at-tahirin. Siama maulana wa sayyiduna Hujjat ibn al il al-Askari. Arwa khuna li turab maqdami fada. واللعنه الله على اعداء مجمعين من الان الى قيامه يوم الدين اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و السر المستودع فيها بعدد ما به چون در آستانه یا در یک روز از شهادت ساحت مقدس امام صادق صلوات الله علیه می گذرد لذا سلواتی رو و سلامی رو به ساحت مقدس اون امام همام عرض کنیم چرا که شیعه و دین پیامبر اکرم صلوات الله علیه و سلم به کلمات و بیانات امام صادق صلوات الله علیه که در واقع اثاره تمامی انبیا و اولیاء الهیست احیا و زنده شد و سلام عرض میکنیم از این مجلس خودمان و با توجه به روح متحران امام همام السلام علیکه یبن رسول الله یبن امیر المؤمنین یبن فاطمت از زهرا یا جعفر ابن محمد صادق سلام الله علی روح که و بدن که تاهر لعن الله ظالمیک و قاتلیک بحثی رو که در این چند جلسه ای که حدوداً فکر کنم شاید حدوداً پنج جلسه باشه به صورت فشرده در خدمت خانمه آیون هستیم بحثی پیرامون مباحث نبوت هست و ما سعی بکنیم در این پنج جلسه نکاتی رو در رابطه با یکی از اصول اعتقادیمون که مبحثه نوبت هست و دومین اصل بعد از توحید هست به اون بپردازیم شاید یکی از مباحثی که باید به اون بسیار بسیار اهمیت داد و شاید گاهی اوقات ما در این زمین کوتاهی کردیم همین مبحث نبوته که به دنباله مبحث نوبت قطعا امامت هم از اون نشأت میگیرد در روایتی که از صحت مقدس معصوم گونه فرموده است که ان اساس الدین از و عدل اساس تمام ادیان الهی بر توحید و عدل است اساس تمامی ادیان الهی بر توحید و عدل است به دنبال این دو پایه و اساس توحید که در واقع آشنایی و معرفت به سعادت قدس ربوبی است خدای متعال مشیتش بر این تعلق گرفته است که روایتش هم حالا خدمتون عرض میکنه و میخوانیم برای اینکه ارتباط ایجاد کند با مخلوقاتش در جهت این ارتباط رجولانی یا رجلی اینطوری درست تر است صحیح تره. رجلی که اینها رجل الهی هستند انتخاب کرده خدا استفا کرده اجتباه کرده یا به قول خارجی ها سلکت کرده و اینها رو به عنوان پیاماور رسول و نبی از سوی خودش در میان مخلوقاتش برگزیده. نکته‌ای که بسیار حائز اهمیده در ابتدای بخص این که ما گاهی اوقات فکر میکنیم که تنها راه ارتباط خدا با مثلا مخلوقاتش از طریق رسولان و حجج الهی بوده است نه این قلطه بلکه خدای متعال مشیتش بر این تعلق گرفته دقت بفرمید مشیتش بر این تعلق گرفته که از این طریق با مخلوقاتش ارتباط ایجاد کنه حالا از طریق دیگری هم خدای متعال ارتباطش رو با مخلوقاتش ایجاد کنه بله میشه در طریق دیگری این مطالبش رو به مخلوقاتش برساند بله مثلا برای مثلا ارز میکنم برای هر کدوم از انسان های ملکی قرار میداد یا هر کسی سآل میکرد یک جوری اون ملک پاسخ اون سوال رو میداد فرض میکنیم یا کسی اگه سآل میکرد به صورت ایجاد صوتی، صدایی برای پاسخ و سآل مشیت خدای متعال در ارتباط با مخلوقاتش این هست که اونها رو از طریق کسانی رو که می هم جنس اونهاست هم تیپ اونهاست به شکل اونهاست مبعوث کنه و اینها رو انتخاب کرده تا اینکه از این طریق آنچه که آین سعادت و هدایت هست به اونها نشان بده. من در ابتدا این آیات قرآن رو تبرکن عرض می‌کنم و تلاوت می‌کنم که مانند آیه 33 آل عمران اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران خدای متعال استفا کرد استفا یعنی انتخاب کرد برگزید کی رو چه کسی رو آدم رو و نوح را و آل ابراهیم را که در واقع آل محمد صلوات و لعلم به دنباله آل ابراهیم هستند و آل امران علل عالمین خدا این کارو کرده دقت بفهمید خدا انتخاب کرده چون بحث مربوط به خداست لذا انتخاب و انتخاب خداست حالا یکی از سوالاتی که مهتمیش که بعدا ها داشت در نوم به پردازیم شبهات نبوته چون یکی از جلسات رو میزنیم که به شبهات نبوت میپردازیم که آیا خدای مطال از اینها امتحان گرفتی که اینها رو مبعوث به نبوت کرده اینها قبل امتحاناتی دادن که مثلا جناب آدم جناب نو جناب ابراهیم شد ابراهیم جناب موسا شد مثلا عیسی یا نه اصلا خدای متعال از ابتدا اصلا قبل از خلقت این استفا و این اجتبا و این انتخاب صورت گرفته حالا اینشالله این رو می پردازیم ولی اونی که بعد بدونیم اینه که این انتخاب انتخاب حکیمانه است می این سال سآل می که چرا ما نشدیم مثلا حضرت موسا چرا ما نشدیم حضرت ایسا چرا ما نشدیم حضرت علی چرا ما نشدیم مثلا اون پیغمبر یا خانم ها بگن ما چرا نشونیم مثلا از زهره چرا نشونیم از زهره خلاصه مطلب این که این انتخاب رو خدا انجام داده و حکیمان هم انتخاب رو انجام داده به دنبال اون حالا میخواهم من روایتی و آیه از قرآن رو بخونم که این در ابتدا برای ما این مسئله رو روشن کنه که اصلا در کلام معصومین که چرا خدای متعال این کار را انجام داده در کتاب اصول کافی در کتاب الهجه باب اول که باب استرار الالهجه اولین رواهد راجع به بحث انبیا و رسوله یک زندیقی هشامب ابن حکم میگه که رواد از امام صادق علیه سلامه انهو قال لزندیق لذی سالهو من اینه اثبتت الانبیاء و الرسول هشامب ابن حکم میگوید که امام صادق صلوات الله علیه به زندیقی که زندیق یعنی کسی که منکر خداست میگه از کجا به امام سوال کرد که از کجا معلومه ثابت میکنید که این پیغمبران و رسولان رو خدا فرستاده و به چه دلیلی فرستاده از کجا اینو شما میگید؟ حضرت میفرمان که انا لما اثبتنا انه لنا خالقا دقیق فهمین این بسیار زیباست لنا خالق سان ان متعااً اننا و ان خلقه ونجی ما خللق و کان ازظ کهسان حکیما متعایه لم جز ان یا شاهده و خلق پنجش مع نکنم.هدا فرمودن که اگر بر ما ثابت شده که خداایی هست، و این خدا خالق و سانه این جهانه و بسیارم متعالی و بلند مرتبه است و این خدای سانه کارش رو حکمته و از اون طرف لم یه جز و شاهده و, و خلقش هم نمیتونم ببیننش چون خدا دیدنی جسمانی نیست که لم جایز اصلا خلقش او رو با چشم سر ببینن چون مادی نیست خدا ولای لامس او خدا قابل لمس هم نیست که بگم هم مثلا لمسش میکنی باشه ارتباط ایجاد میکنیم مثلا میپرسیم میتونیم راحتتر ارتباط ایجاد کنیم فجواب هم و فجواب او و فجاه هم و فجاه جو پس بتونن مستقیما خدا رو ببینن با خدا احتجاج کنن سوال بپرسن خدا جواب بده احتجاج کنن خدا احتجاج کنه میگن خدا اینطوری نیست که نعوذ بله مثل این چیزی که در انحرافات اعتقادات بعضی از مکاتب و از جمله بعضی از اهل سنت و همچنین در دیدگاه های یهود برای خدا حالت جسمانی قائلن حتی در قیامت و حتی در دنیا که خدا به صورت جسم تمثل پیدا میکنه ما این که اعتقاد نداریم که خدا جسمانی که نیست خدا قابل لمس نیست خدا لایو مسته خدا لایو حسه خدا نمست میشه نه حس میشه نه محسوسه نه ملموسه خدا که این دوری نیست حالا که اینگونه نیست پس کارشم که حکیمانه است قطعا ثبته ثابت میشود شود میشود الله سُفَرَاهَ فِي خلقه خدا سفیرانی رو انتخاب کرده در میان مخلوقاتش. چیکار میکنن اینها؟ یو عبرون انه الی خلقه و عباده دقت بفرمایید. اینها کسانی هستند که یو عبرون انه الی خلقه اینها آنچه چرا که دستوری است که از سوی خدا هست به سوی خلقش اینها رو میرسونن و به عبادش میرسونن چیا رو؟ و دلالت میکنن اینها رو راه میکنن بندگان خدا رو ید و لونهم علا و منافعهم انبیاء و سفیران الهی از سوی خدا آنچه که منفعت مردم آنچه که به سود مردم است و آنچه که به ضررشون هست چه در جهت زندگانی دنیاوی چه در جهت زندگانی برزخی چه در جهت زندگانی اخروی بهشون میگن خدا اینطوری میرسونه مطلب لذا تحت چه نکاتی؟ تحت عام، عوامر و نواهی عوامر میشه اون چیزهایی که اینها باید انجام بدن نواهی اون چیزهایی که اون باید نهی کرده نکنید این کارا رو نکنید اینا میشه به تعبیدیم مسالح و مفاسد که حکما و متکلمین اگر خانم آینه که اهل مطالعه هستن در کتاب‌هاشون یکی از حکمتهای به سطح انبیار متکلمین و حکما میگویند این هستش که برای اینکه مسالح و مفاسد زندگی رو برای انسان‌ها یاد بدن و اونها بگن که خلاصه چی به نفعتونه و چی به ضرارتونه چون خالق شما باید به شما بگه چی خوبه براتون چی بده اینجا تذکر بدین بد نیست عقلن هم همینه دیگه ببینید خانم اگر قرار باشه که یک شخصی از بزرگ شما دیزاینر یا طراح یک ماشین باشه این دیزاینر و طراح و سازنده میتونه بگه به نماینده هاش که نمایندگان من که اینو تولید شدی این ماشین این ماشین رو اینطور رفتار کنید به نفعشه اینطور رفتار کنید به زردشه. در واقع نمایندگان هر کارخانه تولید کننده ماشینی منافع و مزارات یا آنجه که به نفع ماشین یا به ماشین هست از کی میپرسن؟ از تولید کننده ماشین و طراح ماشین درست جنر ما همین. همینه خدایی که خالق ماست خدایی که سانه ماست او می که برای روح من چی خوبه چی بده به عنوان نمونه اگر حالی این شاید تو بحث اگر برسیم شاید این رو کم بیشتر باز کنیم این سوال مثلا زیاد می ورسن. امروز من با یه عزیزان جوانتر بودم مطمئن چرا مثلا تلا بره مدحرومه؟ چرا؟ به هر شکلش به هر شکلش تلاب به هر شکلی برای مرد حروم حرومه جز مزرات چیشه فرمودن جز مذرات هم دنیاویش هم اخرویشه اگر مردی به هر شکلی تلابی اندازت چه به صورت انگشتر چه به صورت گردنبند، چه به صورت دستبند به هر شکلی مگر اینکه حالت معالجه داشته باش اون بحث جداست برای این شخص علم امروز هم به دست آورده که برای مرد مذرات بسیار داره در گلوبوله های خونو اثر سو داره و در اینکه تولید نسل او ایجاد مشکل میکنه در اینکه فرمودن که معصومی که مردی یا حجاج الهی مردی که طلابی اندازه مورد لعنت ملاکه است بقید بفهمید مورد لعنت ملاکه است نکمت او رو میگیره برکت از زندگیش میره حالا چه ربطی پیدا میکنه خدای متعال دستنده میگه بابا آقای مرد این ضرره برای شما شما نباید این رو استفاده کنید دقیق بفهمید پس انبیا و رسول و رسولان الهی اومدن چیزهایی رو برای ما انسان ها گفتن که هم بود جسمانی ما رو هم بود روحانی ما رو در به نظر گرفتن گفتن این کارا رو بکنیم به نفعتون این کارا رو بکنیم به زارتون حالا خودتون میدونید خب خدا اینو برسونه به ما از طریق همین حضرت میفرماند میفرماند از طریق انبیا و رسولش یدلونهم علا مصالحهم و منافعهم و ما بهی بقاهم اون چی چیزی که کارایی رو که به نفعشونه برای بقایشون حالا این بقا چه در دنیاست و این بقا چه در آخرت همه رو شامل میشه ها یعنی کار انبیا و رسول تنها مساله و مزار دنیوی نیست بلکه به عالم برزخ و عالم آخرت هم مطرحه گذار گفتم مثلا انبیاء می فرمندی. مثلا این کار رو بکنید در عالم برزختون خوبه حالی اگر رسیدیم توضیح بیشتر میدیم. این عمال انجام بدیم روز قیامت این آثار براتون میاد از روی سراط مستقیم سریتر می گذارید. اگر از حضور شما که مثلا سله رحم انجام بدید طول اون براتون میاد اگر این گناه ها انجام بدید مرگ فوجه براتون میاد. اگر این کارهای باقیات سالات انجام بدید روز قیامت و تو عالم برزه خیلی به دردتون میخوره اگر این گناه ها رو انجام بدید روز قیامت خاطر این گناه تو نگرت میدارن و خیلی شیزای دیگه اونها از سوی خدا اشراف دارن و تمام این عوالم و آنچه که میگویم حالا چه عقل ما برسه چه عقل ما نرسه ما اگر یافتیم که اینها صادق اگر یافتیم که اینها عالمند، و حکم عقل بند از اون رو تباییت کنیم حالا هرچان عقل ما متوجه نشه که چرا آدم مثلا میگم میتو داخل قبر میگذارید مثلا چوب ترکیب در وقت بیدو بگذارید در سمت راست و سمت چپو خب من چه میدونم معصوم فرموده است اگه سهتش تأیید شده ولی عقل من متوجه نمیشه قطعا این کار برای اون میت اثری داره اگر فرامودن مثلا میت رو به سمت صورتش رو به این شک قرار بدید اینطوری شوشوش بدید پس معلومه که دستورات تنها به عوالم دنیا نیست ما رو عوالم برزخم هست ما رو عوالم آخرتم هست تا بقایشون تا اونجایی که باقین خوب دقت کنید ما بقایمون فقط دنیا نیست ما بقامون برزخم نیست ما بقامون به چیه بقایمون الا ماشاءالله است تا اونجایی که خدا بخواد بله لذات در قیامت اندی به این معنا نداریم بلکه خلود به معنای ماشاالله است. یعنی تا جایی که خدا بخواد مهارتی هستی، هستی، هستی، هستی. و, و برزخ با دنیا خیلی تفاوت داره. اونجا یه زندگی زندگیش خیلی وسیter از دنیا است. کما کمای اینکه زندگی دنیا خیلی وسیter از زندگی تو رحم مادر که نه ما بودیم. همین تو زندگی آخرت خیلی وسیع‌تر از عرض بزر شما که عوالم برزخ و دنیاست و اعرازی هم که در اون عالم هست با این عالم تفاوت داره. آثار چیزهایی که تو عالم آخرت و عالم برزخ هست با عالم دنیا تفاوت داره. همون که تو رحم مادر بودی مثلا قزای ما از کیسه آمینیان بوده، آب و خون بوده خوردیم. حالا اینجا قضا و چیز دیگه اصلا نعمت‌های دیگه است به دیگه از محتوا جالبه که انبیا الهی جالبه حتی در عالم رحم مادر هم قبل از که بچه به دنیا بیاد دستور میدن که این کارا رو بکنید برای بچه خوبه اگه میخواین صاحب فرزند بشید این کار رو بکنید تا بچهتون مثلا اثرات خوب براش باشه اگه این کار رو بکنین به ضرر فرزندتونه حتی تو دعایی هست اگه میخواین فرزندتون مثلا دختر یا پسر بشه پسرش مثلا گفتن تا قبل از 4 ماهگی این دعاها رو بخونین اینا رو از خدا اثر میذاره یعنی تو حتی عوالم یه درجه عقبتر تو عالم رحم مادر و قبل از اینکه اصلا ما به وجود بیاییم به این شکل و به صورت نطفن باشیم انبیاء دستوراتشو دادن فرمودن خب این انبیا الهی و رسول الهی منافع و مزار ما رو می و آنچه که خلاصه بقای ما به اونهاست و فی ترک فناهم و در ترک چیزهایی که به ماست اون چی که به زرار ماستم میگم یا مثلا شراب نخور آقا ربا نخور این کار انجام نده این کار انجام بده پس در ترک اون چیزهایی هم که نابودی ماست از رو به ما رو با خبر میکن چون عقل ما نمیرسه بشر عقلش نمیرسه به این که منافع و مساله خودش رو بتونه به دست بیاره برای همین این همه اسم ها این همه مکتب ها به وجود اومده پشت سر هر مکتبی به مکتب دیگه اگر یک زمانی مثلا الان مدرنیسم ایجاد شد بعدش پست مدرنیسم اومده الان مثلا رد میکنه نظرات قبلی رو و خیلی اسمایی دیگه الان نمیخوام وارد شام بشریت بالاپایی میره با عقل فهم خودش میخواد راه سعادت دنیا رو ایجاد کنه حالا یه ذره دیگه میخواد جلوتر بره بعضی از مکاتب میخوان مثلا به حالت آرامش و اون سکون عبدیت برستن مثل دیدگاه های بوداییست این کارا رو بکنی دو مثلا این اعمال انجام بدی بشتر دنبال اینه دیگه اینها هم به واقع این هستش که عقلشون و فهمشون محدوده و قطعا مورد خطاپذیره. پذیره برای نمیشه انسان به دیدگاه های بشر در مورد مسالح و مفاسد تکیه کنه عقلا باید بر سراغ خالق خودش خالق اوست که به او میگوید چی به نفرده چی به نفع نیست هرچند که عقلش نرسه که چرا خالقش اینو گفته بعد به دنبالش فرمود امام ساده صلاحاتون لاله فرفبت الامرون و ناهون ان الحکیم الالیم فی خلقه حالا پس ثابت میشه که اینها رسولان الهی و سفرای الهی اینها در باقی آمرونن و ناهونن امر کنندگانن و نهی کنندگانن از سوی خدای حکیم در جهد زندگی حکیمانه و با سعادت. و المعبرون انه این دقیق بفرمی و المعبرون انه جل و ازه و همول انبیاء علیه السلام و صفته من خلقه اینها کسانی هستند که معبرن اینها کسانی هستند که از سوی خدای عزوجل میتوانند تعبیر کنند میتوانند بیان کنند آنچه که به نفع انسانها هست اینها صفت های خدا هستند از خلقش خدا از میان مخلوقاتش اینها رو انتخاب کرده اینها انبیا هستند حضرت فرمودن اینها حکما و معدبین به حکمت بها حالا با بعدن بحث بعدی میرسیم که یکی از مشخصات انبیاء الهی مهم اینه که اینها به دو صفت مهم عرض متمایز میشن دیگران یکی علم الهی یکی قدرت الهی یکی علم الهی یکی قدرت الهی هر کسی که ادعای نبوت نمیتونه بکنه، هر کسی که ادعای رسالت نمیتونه بکنه، هر کسی که ادعای جانشینی رسول رو نمیتونه بکنه. اینها کسانی هستند حکما، مؤدبین به حکمت مبعوثین به ها. اینها کسانی هستن حکیمانی هستند که خدا اینا رو تربیت کرده. اینا مؤدبان به حکمت، به علم از کجا؟ از اونجایی که مبعوث شدن. از کجا از جوی خدا و در جهت اون مبعوث شدن غیر این غیر مشارکی لن ناس علا مشارکتم لهم فی الخلق و ترکیب فیشه این من احوالهم معیدین من اندل حکیم من علیم بالحکمه دقیقه بفر جمله آخرم عجیب هستم میفرمد میفرمد این انبیا و رسول خدا اینگونه مشیعت کرده که در خلقت ظاهری شبیه انسان ها پرانتز باز کنیم یا به قول معروفیه پیام خارج از بحث شاد نیست ولی بدیم این جمعه که چندی میگن انسانها ها اشرف مخلوقات هست این درست نیست که انسان اشرف مخلوقاته بلکه اشرف مخلوقات به شکل انسانه دقیقه فرمودی؟ انسان اشرف مخلوقات نیست انسان میتونه از حیوان پستر بشه میتونه از مالاکم بالاتر بره بر اساس امیر کلام امیر مومنان السلام انسان اشرف مخلوقات نیست بلکه برعکس اشرف مخلوقات به شکل انسانه حالا خدای متعال امام صادق ما هم میفرمند غیر مشارکت هم لان فی مشارکت اینها، حد اشتراک اینها در منحنی مخلوقات اینه که اینها مثل شکل اون هم اونها انسانن. مخلوق هم وش انسانن. یعنی اینکه مسینا درد دارن، درد دارن. قصه دارن، قصه دارن. می گرین، می گرین. می آشامن، می آشان تشنگی دارن، گرسنگی دارن، مشکلات دارن. بله بله این گونه هست. حالا خدای متعال در اینکه اینها رو به شکل انسان خلق کرده، حالا به شکل جن خواهر نکرده این چون حجت ها و رسولان الهی بر بیگر مخلوقات هم حجت هند نینی بر اجنه بر ملاکت الله بر همه چی هرچی. حالا چرا خدا به شکل انسان اونها را قرار داد این دیگه مشیت الهی است به شکل انسان هم خدا به شکل دیگه در بیاد که در قرآن هم میفهمه که خدا به شکل ملک اینا اعتراض میکنن که گاهی اوقات میگن چرا اینا به صورت رسولان نه چرا به شکل ملک نفرستادی چرا به شکل فرشته نفرستادی به شکل فرشته خدا میفرستاد یه اعتراض دیگه میکردن به هر اما اینها و ترکیب پیشی من احواله معیدین من عند الحکیم الالم بالحکمه اما اینها تو یه ای چیزای دیگه مشارکت ندارن ظاهرا اینها مثل اونها انسانن انسان هم هستن اما یه چیزایی هم دارن خاصه که مثل تو احوالاتشون مثل انسانای دیگه نیست چون خجت خدا اینا جمله اینکه اینها تو کارشون خطا ندارن اینا کارشون حکیمانه است این ها معصومند تمام انبیا معصومند همه انبیا خود دقیقه فرمین حتی از جناب حضرت آدم علیه السلام تا وجود خاتم انبیا صلی الله علیه السلام البته درجه اسمتشون با هم تفاوت داره درجه اسمت خاتم انبیا قطعا بالاتر از درجه اسمت حضرت آدم علیه السلام هست حال این هم این شرط است که برسیم که یک شبهات نبوته که این عرض و حضور شما که آیاتی که علاز ظاهر ما رو به این سو می که شاند که خطا کردن گناه کردن محسیت کردن به چه مناست که وجود مقدس علی ابن مسرزه علیه السلام رو توضیح دادن با معمون مناظری داشتن تو بیانات عیمه است که نخی اینها معصومن اینها گناه نکردن اشتباه نکنین اینها از سوی خدا منصوب شدن اینها عباد مخلص خدا حتی در مورد حضرت یوسف علیه السلام زیلین آیه‌ای بود که لقد hammat biħi wa hamma biħo. Jin tu zita dhamman nindan barotun tun baħsa jituħi. Larat hammat biħi wa hamma biħo. Lawla għandra għabur rabbi. Wa li kellen nosrefan husuqa bal faxa. Bakjadaw جناب زلیخا همت بر گناه کرد بر جناب یوسف امام رضا ایمان فرمود سلام و داله اما جناب یوسف همه به ها همت کرد که او او میخواد او رو به گناه زنا بی اندازد او رو بکشه همه به قتل باد کذالک لنصر فنه سوء و الفحشا ما هم قتل و هم زنا رو از او دور کردیم باد باز کردن درها نگاه کنید تو قرآن اگر انسان نگاه نکنه میگه ای حضرت یوسف هم یه لحظید داشت مسینک نه بابا آیه داره میگه انهم عبادنا المخلصین جزء عباد مخلصه ما سن یوسف خیلی بد حواسمون جمع کنیم که به آستان مقدس انبیا توهین نکنیم چون فرق نمیکنه توهین به انبیا توهین به خداست توهین به انبیا توهین به اعتقادات و زحماتی است که اونها کشیدن. خیلی مهمه ها. لازم ما مسئولیت داریم در این زمینه یعنی باید احترام بذاریم به انبیا و رسولان الهی با احترام، با احترام. حتی به در بزرگ هممون حضرت آدم علیه السلام و مادر بزرگمون حضرت حوا سلام الله ها بعد حضرت فرمودن که البته در ظاهر خلقت شبیه اونها حالا که بررسیم این آیه که آیه آخر سوره مبارکه کهف است که آводه الله من الشیطان رجيم قول انما نما بشرون مثل کم یخ حالی فهمیدم بشرون مثل کم یعنی چی فهمیدم مثل زیر آیه امام صادق فهمیدم خدایی پیامبر فرموده منم مثل شما مخلوق هم. اما مخلوق هم مثل شما یه هایی در خلقت با شما دارم مثل شما مثلا درد دارم مثل شما مثلا قصه دارم مثل شما می آشامم مثل شما می خورم اما یه تفاوتایی برم با شما یکیش اولیش که بر من وحی میشه الا یوحا ال اولی که بر من وحی میشه یه نکته و بعد حالا ان جلوتر میبینیم می ببینیم که نه یه تفاوت تفاوتای دیگ هم دارن مثلا جبله این که مثلا نبی خدا خواب بر او مستولی نمیشه چرا؟ چون عالم خلقت به دست اوست عالم میفرمانه اینجا عالم خلقت به دست اوست فرمود که نام عینی ولا یا نام قلبی پیامبر پیانبر فرموده از صلی الله علیه که چشمای ما علا زهر میخوابه اما قلب اون نمیخوابه علا زهر ما خوابیم علا خواب نیستیم ما به عالم و قلب عالم امکانی پس همین الان وجود مقدس امام است اربان و فدا میخوان به ظاهر میخوابن اون به باطن نه پیام همینطور رو هم میتون ه سلام رو میطور خوب دقت فرمیین یعنی به حال میخوام بگم اگر کسی در اکناف جهان الان وجود مقدس امام است اربان و فدا رو صدا بزنن حالا اینت در حالت خواببان باشن قلبشون بیداره پیام همین رو فرما ما بیدار بودیم میشه بیدار قلب ما الاز ظاهر می و خیلی چیزایی دیگه که حالا بعد بهش برسیم توی دیدگاه اهل ویتنانسان در مورد انبیا سبس فرمودن ثم ثبت ظالکه فی کل دهرن و زمان مما اتت به رسول والانبیاء من دلائل والبراهین و از اینجا ثابت میشه شه مام صادو علیه السلام فرمودن که در هر زمانی باید بیاگن رسولانی و انبیایی با دلائلی دلیل یعنی چیزی که راهنمای کننده است دلیل یعنی راهنمایی کننده مدل یعنی کسی که دلالت و راهنمایی میکنه حتی دلیل به معنای راهنما هم اومده تو عرب که یعنی کسی که انسان را راهنمایی میکنه راه رو از چاه به انسان نشون میده راه رو از بی نشون میده اینها با دلائلی با براهینی برهانهایی که انسانها رو قانع می‌کنه راه را از شاه نشون میدن لکیلا تخلو ارز الله من حجته یکون معه علم یدل علی صدق مقالته و جواز عدالته تا اینکه زمین از حجت خدا خالی نباشد چون اینها حجت خدا هستند و اونها به همراه اونها است که این علم که حالا بعدها اینشالله برسیم دی جلسات بعد دلالت میکند بر صداقت گفتارشون و ادالتشون اونها علمی دارن انبیا و قدرتی دارن از سوی خدا زمینم زمین هم هیچ که از حجت خدا خالی نیست همیشه این حجت جلائی هستن امروز هم که آن, آن من شما زندگی میکنیم حجت بالغ و عرشت حجج الهی وجود اقدس علا حضرت حجت ابن الحسن الاسگری صلوات الله علیه هست اما در کنار ایشون کسان دیگر هم هستن بله جناب حضرت خیزر هست بله درم زندگی میکنن با حضرت و در میت حضرت هستن آیا حجت های دیگر هم هستن هستند و در کنار حضرت هستند و خدمت گذاره به حضرت هستند فعلا قسمت اول بحث ایزه بفهمیم. اشاره می کنم که یک آنتراک یا بریکی ما داده بشه ارض و حضور شما یه استرهایتی بفرمید یه حدود یک رو بعد انشاءالله بقیه بحث رو در خدمتون هستیم یک سلبات بفهمید. در روح تمامی از انوات از مومنین و مومنات و انبیا و اولیا و عیمه و سلام و انوات خودتون اللهم ساله اللهم ارز حضورتون که بله بحث ما در پیرامون مباحث نبوت بود و شروع بحثمون رو با یک در واقع پیش مقدمه ای که خدای متعال مشیتش بر این تعلق گرفته که برای اینکه آنچه آنچرا که از منافع و مزار و آنچه که به نفع مردم و به زرر مخلوقاتش هست از طریق رجل الهی دقیقه بفرمین از طریق رجل الهی به انسان ها و دیگر مخلوقاتش حالا اجنه و دیگر مخلوقات دیگر برساند. در مشیت خدا در زمره رسولان و پیامبرانش خانم ها نیستند حالا چرا خدا مشیتش اینطور تعلیم گرفته که خانوم ها نیستند اون دیگه حکمت خود اوست اما حججی دارد که از میان خانوم ها مانند حضرت زهرا سلام علیه ها مانند حضرت مریم سلام الله ها مانند حضرت خلیجه و حضرت زینب سلام الله ها که خود وجود مقدس حضرت زهره سلام علیه ها به تنهایی خود ایشون در واقع خجتند بر تمامی انبیا به غیر از وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم اما در مقام نبوت و اینکه رسالتی رو مستقیمن از سوی خدا به احده بگیدن نه اینشون اینطور نیست و در واقع یکی از الفاظی که در زیارت خطاب به ایشون ارز میشه که ایشون از سلام یا بقیه تو نبوه ایشون بقیه نبوته و در میان قانوها کسی نداریم که در واقع رسول باشد و عرض حضور شما پیامبر باشد. غذا در زمان پیامبر هم صلی الله علیه و آله سلم هم یه خانومی مسیلمه کذاب پیدا شد که من پیغمبرم و عرض حضور شما که یه دیرم هم درو خودش جمع کرد. و بعد عرض حضور شما که بعد از مدتی خلاصه دروغش معلوم شد و و خدمت شما عرض شد که با کسی دیگری که خلاصه ادعا کرده اونم پیغمبری آقایی که حالا اسمشان و یادم رفت با هم ازدواج کردن و گفتم از سوی خدا اومدیم و ادعاهای خلاصه اونچنانی کردن که بعدم افتضاحشون معلوم شد منظورم این بود که مشیت خدا بر این تعلق نگرفته از که از خانوم ها کسی حجت و کسی ببخشی رسول و ارزوی پیامبر باشه اما مشیت خدا بر این تعلق گرفته که اتمام حجت را اتمام حجت را هم این اتمام حجت از سوی مردها رجل است هم از سوی زنان است که سرامد همشون که بر تمامی زنان عالم در واقع حجت است و بر به غیر از رسول مکرم صلی الله علیه وسلم وجود مقدسی حضرت زهره سلامونالده ها هستند طبق این نکاتی که حالا داریم عرض می‌کنیم به ترتیب که میخوایم یه مقدار فرمت بدیم و منظم بحثو بریم جلو اینگونه عرض می‌کنیم. یک نبوت یا نبی از کلمه نبعه میاد نبعه به معنای خبره نبی را از این جهت نبی گویند که چون خبرهای آسمانی و وحیانی را به ما میرساند از نبی را، از آن جهت نبی میگویند چون خبرهای آسمانی را بر ما میرساند و آنچه که از سوی خدا هست به گوش مخلوقات میرساند. دو، تیتر دو. انتخاب نبی، انتخاب نبی به خداست. چرا که آنها رسولان الهیان، رسول اللهان، رسول اللهان. چون منتسبه به خدا پس انتخابشونم به خداست و لذا این آیه سی, سی آل امران هم از باب همین مسئله بود که تلاوت شد انالله از تفا آدم و نوهن و آل ابراهیم و آل امران علال آلمین نکته سوم: خدای متعال پیامبران و رسولانی را که استفا کرده اون هم بر اساس علمش دقیقه بفرمید آیه هفت سوره دخان خان اوضو بالله من شیطان رجیم لقد اخترنا هم علا علمین علال آلمین آیه هفته سوره دخان لقد اخترنا هم علا علمین على آلمین اخترنا همون استفا همون اجتبا ما انتخاب کردیم آنان را بر اساس علممون بر عالمین بر تمام عواده البته اصل این آیه تعویلش در مورد وجود مقدس پیامبر و آل پیامبر است سالوات الله علیه مجمعین اگر رجوع کنید به روایات زیل این آیه که وجود مقدس پیامبر و این مهدا به انتخاب خدای متعال بر اساس علم نافذ خدا تصریر روایت اینه به علم نافذ خدا علمی که نفوذ داشته است و می دانسته است خدا به علمش چه کسی برای این سمت مناسب است حالا کجا خدا اینو داشته داره دیگه خداست دیگه یعنی خدا در میان تمام مخلوقاتش چه که هست به علم خودش انتخاب کرده است وجود مقدس مثل حضرت آدم رو به علم نافذش علم نافذش ها رو تصدیر اینه انتخاب کرده است جناب حضرت ابراهیم رو علیه حالا چه کسی باید خاتم بشه اونم انتخاب شده چه کسی باید خاتم اوسیا بشه اونم انتخاب شده لذا این زباد مقدسه قبل از اینکه به دنیا بیان و قبل از اینکه اینجا مبعوث بشن در عوالم قبل اصلا اینها امتحاناتی دادن اصلا در عوالم قبل بوده اند و جالب توجه هم این هست که وجود اقدس پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن من پیغمبر بودم کنتو انن نبی من پیغمبر بودم در حالی که آدم ما بین ارز و حضورش ماوتین ما بود آب و خاک بود هنوز خلق نشده و بلی من پیغمبر بودم یعنی خلقت نوری پیامبر است. که حالا این خلقت ها حالا خود چند نوع خلقت دارن اگه خلقت نوری شونه خلقت روحی شونه و تینتی شونه و کم خلقت جسمی شونه لذا وجود مقدس پیامبر صلی الله علیه سلم نورن اول ما خلق الله تینن آخرین پیغمبره که اومده یعنی جنبه دنیایش اما جنبه ملکوتیش اولین است و اولین خلقت خدا هست اشرف مخلوقاته خب پس نکته بعدی که ارز کردم خدمت شما اینه که این استفا و این انتخاب طبق آیه هفت سوره مبارک دخان لقد اخترناهم علا علمن علال بر اساس علم الهی بوده است که خدا انتخاب کرده بعد بر اون اساس ازشون امتحان گرفته امتحان هارم بر اساس آن مسئولیتی که میخواد بهشون بده قطعاً امتحانی که از وجود مقدس خاتم انبیا صلی علیه و گرفته خیلی فرق داره با امتحانی که از حضرت ابراهیم گرفته شده از حضرت موسی گرفته شده از حضرت عیسی گرفته شده و جالب توجه هم اینه که نه تنها پیامبران و بر رسولان الهی دقت بفرمین نه تنها اونها امتحان دادن بلکه جانشینان آنان هم امتحان دادن چون مشیت خدا بر این طلا گرفته که اتمام حجت را به رسول و به وسیع من رسول تموم کند لذا معمولا رسولان الهی اوسیه داشتند معمولا این گونه بوده مخصوصا اولوالعزم های اینها لذا جانشینان اینها هم امتحان دادن و جانشینان اینها هم به انتخاب الهی هستن یعنی وجود مقدس امیر مومنان صلابات الله تا وجود مقدس حضرت حضر مهدی علیه سلام یا دوازده نفرد جانشینان حضرت ایسا علیه سلام که هباریونن اینها به انتخاب خدا بوده حتی نائبان خاص امام عصر هم به انتخاب الهیه یعنی این چهار بزرگوار چهار نائب خاصه وجود مقدس امام عصر اروان و فدا که محمد،, محمد ابن اثمان سید امری اثمان ابن سید امری حسین ابن, ابن روح نوبختی و علی ابن محمد سیمری اینها هم به انتخاب خداست حتی در مقابل نیابت خاصه یعنی به انتخاب خود و امام نیست حتی به انتخاب امیرمونان سلابات الله جالب که از پیامبر سلابات الله حالا می سؤال میشد که یا رسول الله علی را خودتون انتخاب کردید یا خدا میفرمودن جز به امر خدا چیز دیگه انجام نمیشه همونطور که خدا من را انتخاب کرده جانشین من رو هم خدا انتخاب کرده و جانشینان من رو این هم نکته بسیار مهمی است که پس این انتخاب این استفاده یک از سوی خداست دو بر اساس علم است که خدا این رو و حکمت است که این کار رو انجام داده و سوم این که جانشینان این هم همین گونه هستند نکته چهارم خدای متعال این رسولان و این حجج رو فرستاده است که منافع و مزار انسان ها در جنبه سعادت دنیاوی و اخرویب اونها بگوید نام این مزارها و منافع شده دین دین که اسم دیگرش میشه عوامر و نواهی عوامر و نواهی تمام رسولان و حجاج الهیه این عوامر و نواهی رو داشتن البته با یه بازه های متفاوتی بازه این عوامر و نواهی چه جهت دستورات بعد چه جهت دقیق بودن و کامل بودن در دین خاتم خاتم آنهاست کامل ترینش در دین خاتم انبیا صلی الله علیه, علیه و سلمه نکته بعدی وجود رسولان الهی طبق آیه مبارکی 165 سوره نسا اینها مباب اتمام و حجت بر من و شما هستند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رسلان مبشرین و منذرین لالا یکون للناس علی الله بعد رسول و کان الله عزیزا حکیم خدای متعال تلاوین آیه مبارکه 165 سوره نساء رسولان اینو فرستاده است که اینها مبشرین مبشر تو هم در جهت مثبت استفاده میشه هم در جهت منفی یعنی هم بشارت به نعمت های الهی میدن کلمه بشرا ما اکثر هم فکر دو جنبه مثبت و مجده معنا میکنیم اونتی خلطه در قرآن بشرا و بشارت هم در جهت مثبت به نعمت های الهی و و از وضع شما بهشت اومده مثل بشرا لسابرین و بشرا لسابرین بشارت بده به صابرین بشریل المتقین به بده به متقین از اون در جنبه منفی هم به کار رفته شده کلمه بشارت و بشرا در جهت مثلا عذاب الهی پس پیامبران و رسولان الهی مبشرینن یعنی خبر دهنده هستند چه در جهت منافع در چه در جهت مزار و منذرین منور و انذار با دالزال ما ها معنا می کنیم به معنای ترساننده بیم دهنده این معنای صحیحی نیست منذر و انذار به معنای آگاهی دهنده تنبه دهنده معمولا ما انذار رو به معنای ترساننده و بیم دهنده معنی می کنیم که درست نیست رسولان الهی منذرن <تص> اینها آگاه دهنده هستند اینها تنبه دهنده هستند انسان ها رو پس رسولان مبشرین و منذرین اینها میان تمام راه و چاره رو معلوم میکنن منافع مناف و مزار رو میگن بشارات های مثبت و منفی و اون چه از تنبهات لازمه میگن لالا یکون لناس علی الله تا این که بعد رسول تا این که روز قیامت مردم نیان به خدا بگم به ما چیزی نگفتی که به ما نرسوندی که مطلب رو ما که متوجه نشدیم که پس خدا در واقع به واسطه رسولان الهی چه میکنه اتمام حجت در چی حضرت فرمودند در این که دلائل و براهینی رو برای انسان‌ها و مخلوقاتش میرسونه که این کارا رو انجام بدید. حالا کسی این مطالب و دستورات رو شنید انجام نداد. خدا میگه من که به چرا به جای اینکه حرف رسولان منو گوش کنی حرفی حرف انسان‌های معمولی رو گوش کردی؟ چرا به خاطر اینکه دلبستگی به را که من گفتم به ساحت مقدس انبیا و حجج من و جانشینان او رفتی به افراد معمولی در سپردی قابل توجه حواست من باشش یکی از کارهایی که شیطان انجام میده اینه که می آید انسانها رو به جای اینکه که با حجت الهی و حجج الهی ارتباط ایجاد کنن می آگد انسانها و افرادی رو به عنوان, عنوان حجج معرفی میکنه در حالی که اینش شیطانی هن. در حالی که اینا شیطانی هم. و یا تعلقات قلبی ها رو به سوی کسانی میاندازد خیال میکن اینا سعادت دنیا آخرت رو بر اینها به وجود میارن یکی از کارهای شیطان همینی دیگه در واقع حق رو تلبیس میکنه و حالا که برسیم شاید تو این زمینی که بیشتر صحبت کنیم که خلاصه مطلب فلان پیر و قطب فلان آرف چنان بزرگ میشه در دیدگاه ما؟ که پیامبر و اهل بیت اسمت علیه سلام قدر نیست گایوغاد فلان فیلسوف چنان بزرگ میشه در نزد ما که پیامبران الهی و ائمه میهود سلام السلام اینطور نیست یک از کارهاییست که خورد شیطان استاد در این زمینه و این است که ماها انسانها گول میخوریم پس اینها چه میکنن؟ اینها بعد از بشارتها و انذارهاشون به انسان ها که میرسد دیگه روز قیامت حجتی نداشته باشن به خدا بگن خدای تو به ما مطب نرسوندی تو به ما مطب نرسون میکنی رسوندم دیگه ببین 124 جا... هزار تا پیامبر و جانشینانشون بود کم تعدادی که نبودن حالا حتی دقیق لذا پیام جامعه یا انسان های پیامبر دیده یا پیامبر درک کرده فرق دارم باید. جامعه و انسان‌هایی که پیامبر ندیدند یا درک نکردند من شما جز هایی هستیم که جامعه انسان‌هایی هستیم که پیامبر رو درک کردیم و در واقع جامعه‌ای هستیم که با آثار نبوت و با اتمام حجت‌های نبوت به گوش من و شما رسیده فرد مثلا وان کسی که تو آفریقا است فردی وان کسی که مطالبش نرسیده اتمام حجت بر اون شاید نشده باشه ها شاید به اون مطالب نرسید. ممكن. ولی اونا هایی که با محجت رسولان الهی به هر شکلی مطالب حجج الهی به هر شکلی بهشون رسیده است اینها دیگه حجت برشون تمومه و این روز قیامت نمیتونن به خدا بگن خدای به ما مطلب نرسید ما متوجه نشدیم و کانال الله عزیزن حکیما و کارهای خدا با خدای با عزت از روی حکمت است و قطعا روز قیامت یکی از آن چیزهایی که بر ما شاهدن و بر ما حجتن رسولان و حجت الهیه هستند و زمان به وجود اقویس پیامبر و عیمه حدا علیه روز قیامت جوز شهده هستند جوز شاهدینه خب در کنار اینها که ارز بحضور شما وجود دارن قطعا پیامبران و علل از خدای متعال به اونها صحف یا کتاب الهیه هم عطا کرده. که الان بحث بعدی اگه بخویم بهش بپردازیم. این تا اینجای بحث. نوپات رو ما به دو دیدگاه میتونیم کم ببریم جلوتر بحثو. اگه سوالی تا اینجا خانم‌های یا این دارم بفرمایید اگه سوالی هست. عرض حضور شما که اگر نه من بحثو ببرم جلوی که دو تا سوالات هم که اینجا نوشته شده رو من جواب بدم. سوالی هست خانم آقایون سوالی دارن تا اینجای بحث امم کم پولانتال بفهمین فقط بله سلام سلام الله علیه بله بله بله. برای میکروفون به صدای شما پخش با توجه به این صحبت در مورد حضرت یوسف اون که تو زندان پیام میده این چه جوری میشه تفسیر کرد؟ شما گفتین که اصلا اینا معصومن. شما اگر اجازه بفهمید ما یک قسمت از یکی از این جناسات پنج جناسه رو میپردازیم به حفوبات و شبهات نبوت. که یکیش همین, همین بحثه که ما قائلیم که پیامبر الهی که حالا جلسه بعد این خصوصیات انبیارو بیشتر بهش میپردازیم یکیش همین اسمته که خلاصه انبیار الهی و حجاج الهیه این پنجتا خصوصیت رو دارن یک منصوب مناللهن دو معصوم مناللهن سه منصوص مناللهن چهار علم الهی رو دارا هستن پنج قدرت الهی رو این پنج تا خصوصیت انبیا و رسولان رسولان و جانشینان هست یکی از این پنج تا که حالا تو جلسات بعد ان بهش می بهش میپردازیم بحث معصومیته معصومیته هم به این معنا که اینها گناه نمی‌کنن و نکردند و دیگران رو هم به گناه و خطا نمیاندازن چون اینطور باشه نمیتونن بشن که خب حالا میمونه سر سری آیاتی کین آیات ظاهر ما می‌بینیم و زود حکم میکنیم که اینها اسمتشون زیر سوال میره. از اون یکی همین آیه که جناب یوسف علیه السلام که شما می‌فرمید که وقتی اون زندانی آزاد شد به اون زندانی گفت اسکرنین در رب من منو در نظر رب بد یا فرعون یادآوری کن که من هم که منو آزاد کنه. خب حالا با توجه به مسئله ایشون که گفتن این شرکه ها شرکه آه. گفتن این شرکه ایشون می که عرض حضور شما که پس بنابراین انبیاء الهی که اومدن برای این که شرک رو از بین ببرن حالا می خونیم که انبیاء اصلا رسالتشون یکی از رسالاتشون یکی از کارهایی که وضافی که به اخته دارن یکیش منافع و مساله مردم رو بگن یکی این هستش که انسانها رو از اجتناب بدن از اطاعت و عبودیت تاقوت به سوی عبادت پسگه خودشون دو چهار شک باشن چجوری میتونن مین ش گذ ببرن ها؟ پس قطعا و یقینا شکل نبوده خب حالا این چی بوده و به چه شک بوده؟ ایزه بفهمیم توی جلسه ای که ما میخوایم بپردازیم به همین این اینگونه که ما از ساعت مقدس انبی انشاالله این شوپر از ذهنون پاک کنیم که اونها قطعا دو چهار گناه نیستن امام بزارسلام هم در این مسئله تاکید دارن نس شیعه علوی و شیعه امام صادق السلام در اعتقاداتش در نبوت باید این گونه باشد که نسبت نه تنها بیان بر بر بر که به پیامبر و ائمه خدا علیهم السلام بلکه به انبیا الهیم درست بکنه. هم درست فکر چون اینها به هم همه هم اینا رسولان الهی هستند همه انتخاب شده خدوان اینا عباد مخلص خدا انهم عبادنا مخلصینه جز عباد مخلص خدا هستند تخلیص شده ای خالص شدن در عبادت خدا و عبودیت خدا اینه انشاءالله چشم تو اون جلسه ای که ما اختصاص به اون داره عرض میکنم خدمتون یهودا که نبوده به اون شکل از و حضور شما که جان شینان انبیاء از الهی هم که اونهایی که دقیقا معلوم بوده که کیا هستن که یهودان ما قبول نداریم البته اون خودشو در واقع به حضرت عیسی نزدیک کرد و بعد به امان منافقی بود که ارز به حضور شما که اما قطعا و یقینا جانشینان انبیاء الهی که از سوی خدا انتخاب میشن کم که خود انبیاء الهی انتخاب شدن و حالا این جانشینان درجه دارن باز خودشون همینطور که جانشینان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بوده برای حضرت ابراهیم هم همین طور، برای حضرت آدم علیه السلام هم همین طور، چون امر امر خدا است، دین خود است، دست کسی که نیست خود خدا انتخاب کنه، دست من شما نیست که دین خدا که دست حتی انبیا هم نیست، انبیا موتی امر خدا نه، هر کی رو بگوتش، سلام نه، و یقینا خدا کسانی انتخاب میکنه که از مامداری انبشن که اینها به این پنج خصوصیت حد در حالا با درجات متفاوت اینا متخلق باشد. دیگه سوال دیگه بفرمیم بله قبلا یعنی که ارز کردن به اوالم قبل میدن بعد خیلی از ارفای ما تناسف قبول دارن منظور شما هم به همینه نه ما تناسخ رو اصلا قبول نداره ببینید تناسخ رو به این معنای که عرفان در واقع هندویسم یا بعض از عرفان میگن ما به هیچ وجه قبول نداریم امام رزای الاسلام فرمودن کسی که قایل به تناسخ به این شکل باشه کافره ما این آه اعتقاد آه داریم حالا ایزه بفرمیم ما اعتقاد تناسخی که اونها میگن با بحثی که ما میگیم تفاوت داره اونها تناسخ به این معنا میگوین که افراد وقتی میمیرند از بین نمیرون بلکه به شکل دیگه مثلا به شکل حیوان دیگه در میان، به شکل انسان دیده اگه آدم بدی بوده مثلا باید فقیر به نوعی بیاد اگه آدم بدی بوده به شکل سگ یا حیوانات دیگه بیاد این تو اون چرخه که در واقع میچرخه اینقدر بمونه, بمونه بمونه بمونه توی نوعی تا پاک بشه تا از وضع شما که به آلم بعدی یا به نیروانا برسه خب. اما ما ماده تیتگاه من این نیست کسی تو دنیا میمیره مثلا به شکل سگ در میاد به شکل حیوان در میاد و به شکل انسان فقیر میاد باز دوباره توی همین دنیا داره زندگی میکنه ما اصلا به این معنا نداریم نه ببخشید مثلا کسی مثلا عطار معتقدن که روح از بدن در میاد به بدن دیگه برای دیگه عرض میکنم دیگه حالا همین عرض میکنم که روح ما میره توی بدن دیگه حالت یا بدن حیوانی یا انسانی به شکل انسان فقیر زندگی میکنه یا به شکل عرض حضور شما که یه حیوان تا پاکشه من دارم اینو ما تو رواهتمون نداریم ترد شده از توی محصول و انبیاء الهی در از یکی از کارهایی که انبیاء الهی انشاءالله میرسیم بهش بحثش ارزم کنیم که اینها یو هم و یو علم کتاب و بلحکمه او رفع آمادن تنه به تنه انبیاء بزنن و جانشینان اونها لذا بعضی اوقات اینا حرفای خیلی جذاب و جالبه میزنیم ولی میگه همها آیا ها هر دیگه شما از توی خدا هستی؟ هر نه. میگیم آقا احتمال گناه کردن شما هست یا اشتباه شما بله بر چه اصاز این حرف رو زدی؟ حالا یا بر اصاز میگه مثلا مکاشفات هم یا استادم هم یا هر چی میگیم عقل ما حکم میکنی که از شما تبایید نکن چون پیامبر و ائمه حدان سلام این نظریه رد کردن که روح به این شکل به تو جسم دیگه ای. پس انبیاء الهی در عوالم قبل بودن همون پیامبر حالا اینجا که تو این دنیا میاد جسم نه اینکه به شکلی مثلا شکل‌های مختلف در میام. دقت فرمون چالش کردم. بله. اینج دو سوال شده، یکی اینکه طلا برای مرد ضرر دارد پلاتین چطور؟ گون؟ خب اینو عرض کردیم که خب فرمودن بله، برای مرد zarar پلاتین نخیر اشکالی نداره. در مورد ارذوشا شستشوی مرده مقدار قطعات کفن و غیر آیت در قرآن دستور داده شده است. در قرآن تصریح اینطوری به این شکل توضیح داده شده؟ نه، بلکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه الهی سلام که طبق سنت الهی دستوراتشو را فرمودند که چون مبین قرآن البته در قرآن به طور کلی دستوراتی داده شده اما به صورت شرح مفصل نخیر مثل اقیم سلات نماز به پا داریم چیجور نماز بخونیم اون دیگه خود پیامبر و این به چه شکل اما اینکه آیه آیا در مورد شستشوی مورده به این شکل و تا تکفن نخه این دیگه در سنت نبوی و جانشینان اوست من ارز بزرگ شما که چرا برای ادیان دیگر دستور داده نشده مگر خدا همه بندگانش رو یکسان دوست ندارد خدا بندگانش رو یکسان دوست نداره نه این بذ راحت بهتون بگم خدا قطعا بندگان کافرشو دوست نداره چون ما یه سری بحثایی رو از این به بعد ما با استناد به آیات روانی باید بریم جلو خدا هدایت همه بندگانشو دوست داره دقت کنیم خدا هدایت همه بندگانشو دوست داره اما اگه بنده کافر شد و فاجر شد و ظالم شد خود خدا هم اونا رو لعنت میکنه الا لعنت الله على القوم الظالمین الا لعنت الله على القوم تفسیر تو قرآنه یا آیاتی که ان لا لا یحب و مثلا خدا خوان نسی خدا خیانت کاران رو دوست نداره اولا خدا همه بنده هاش رو دوست داره هدایت بشن اما وقتی اینا یه میکنن قطعا مورد محبت خدا قرار دیگه نمیگیرن اگه آیاتی داریم ان لا, لا این یک دو اگر منظورتونه که دستور داده شده احتمالاً دستور داده شده اما ادیان دیگه در سر تحریفات مثلا این که الان در دین مسیحیت قائل هستن که حضرت عیسی علیه سلام شراب می‌خورد. مسیحیت الان عرض حضور شما شراب رو به اندازه‌ای کمی مثلا می‌خورن به معنای خون حضرت مسیح. و یک آردی رو درست می‌کنن عرض حضور شما که به عنوان گوشت حضرت مسیح و اینا در شراب قرار میدن میگن هر کسی رو بخوره خلاصه پاک میشه. و خون مسیح و گوشت مسیح در وجود او قرار می‌گیره و خدا گناهان اون رو می‌بخشه. ما خیلی چیزهایی است که هم اعتقادات هم احکام در ادیان الهی تحریف شده انجامی که شما هم همین آدابه مثلا همی سآل شاده که کسی از خانم را پرسیدن یا آقایون و جالبه که هفته پیش من تو یک جلسه ای خدمش عرض روید که با یه آقای آشنا شدیم که بودن مثلا 35-40 ساله بودن ایشون اهل شعروی بودن و الان هم در شوروی چکسلواکی مبلغ اعتقادات شیعه هستم مسلمون شد و شیعه شده بعد گفتم که شما میشه بیو از زندگیتون بگیرن حالا اگه تونستم ایشون هم دعوت کنیم اینجا بیان خیلی خوبه چون اگه نرفته باشن هنوز ایشون گفتن که من پدر مادرم مسیحی بودن و خاله یهودی بودن من تمام عدیان رفتم عرض بزرگ شما که هم ادیان الهی رو رفتم و سوال کردم سری سوالاتی به پاسخ نرسیدم در مسیحیت مثلا از کشیش میپرسیدم که چگونه ممکن است که خدا حضرت ایسا خدا باشه و حضرت ایسا پسر خدا باشه و روح القدس او جواب نمیداده گفتم قبول کن در یهود هم میرفتیم اولا اجازه سوال نمیدادن اگر هم محسن بدن پاسخ درست نمیدادن و عدیان هندویسم و بودایسم هم رفتم حتی تحقیق کردم. نکتی جالبی که واسه من بود این بود که شما چی شد شیعه شدید و چی شد مسلمان شدید و یک کم چیزهایی که برای من جالب بود اینه که دیدم در دین پیامبر اکرم و عیم حدا علیه السلام باب سوال خیلی بازه و پاسخ میدن پاسخ میدن و دو سه تا مسئله اساسی برای من خیلی مهم بود یکی مسئله جبرو اختیار بود که برای من حل شد گوه تو ادیان دیگه نتونستم جواب بگیرم حالا این را میرسیم ایشه حالا که انبیاء الهیم سوالات بیسیک یا سوالات پایه‌ای بشریت رو بتونن جواب بدن برای انسان سوال میکنه من برای چی خلق شدم برای چی تو آمدم کجا میخوام برم این جمله شعری که ماره آی مولوی است که همیشب حرف من این است و همه روز سخنم که چرا قافل از احوال تن خیشتنم ز کجا آمدم آمدنم بهر چه بود پس کجا می و می و پس ننمایی و تنم اینو انبیا جواب دادن به آی مولوی آی مولوی از خودش داره میگه نه تو خدا معلوم کرده اینو آی مولوی تو نمیدونی از کجا آمدی و چی آوردنه ولی پیامبر و اینو فرمودن چرا تو نمیدونی که پس کجا ننمایی وطنم خدا وطنتو تعیین کرده کجا باید بری اینطور نیستش که ما گیج باشیم دقیق بفرمید یکی از اون چیزهایی که در کنار انبیا دکون زده شده عرفا هستن عرفا در کنار انبیا و رسول الهی آمدن و دکون زدن و ادعا ما هم مثل اونها می توانیم شما رو تذکیه کنیم ما هم مثل اونها می شما رو میخونیم یزکی یعلمون الکتاب والحکمه ما هم به شما تعلیم میدیم ما هم شما رو به سعادت میرسونیم که باید خیلی حواستونو جمع کنیم و های زیادی تو این زمینه گول میخورن از جمله که چیزا همینی که شما میفهمین از قول عطار که میگید مثلا تناسخ قائل ما از اون قائل نیستیم ائمه ما رد میکنن چون عارفان واقعی ائمه هستن عارفان واقعی پیامبرن اگر بین این کلام و اون کلام تعرض ایجاد چه ما بین کلام مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم و جنابای اتار کدوم باید انتخاب کنیم بفرمید شما ولی چرا مسلمن پیامبر بله دیگه چون با کلام وحیه دیگه حالا هرچنگ که آی اتار یا آی اکس ایگرکزه دیگه قشنگ هم صحبت کرده یا حرف خوب هم زده این نکته است که انشالله حالا بیشتر برش بپردازیم خب ساعت حدود هشتانیمه اجیزه بفرمید میخوایم که همینجا که باید مذاکرات بدیم و امید خدا بقیه بحث انشالله باشه برای جلسه آینده اللهم صلی علی محمد و آل محمد اللهم کل ولیه که لحجت ابن الحسن سلاباتو که علیه و علی آبائه في حاضث ساعت و فی كل ساعت ولیان و حافظا و غاید و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزکته و عابت متعه فیها طبیلا شادی روح تمامی مؤمنین و مؤمنات و هدیه به ارواح مقدسه پیامبر و ائمه خداوندشان و انبیاء الهی اجمان فاطمه السلوات علیها السلام و, الله و سلام الله